کتاب افثانه های جادوگری به نویسندگی آقای محمد شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای سوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی گوینده حمید رزا شاملو بنامه حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. ورز درود خدمت شما عزیزان همراه و همسفر من با یکی دیگر از داستانهای های جادوگری در خدمت شما هستم و امیدوارم که تا پایان این داستان هم با بنده همراه و همسفر باشید. این داستان الباب پریس به نام خدا جوانی بود به نام آلبا پریس که با مادر بزرگ پیرش زندگی میکرد و زندگی سختی رو میگذرند آلبا پریس سیاد بود اون هر روز صبح به جنگل میرفت و در سر راه جانوران تله میگذاشت اما به ندرت چیزی گیرش اومد. به همین دلیل از کار خودش ناراضی بود تا اینکه یک روز به نزد مادر بزرگش رفت و گفت من از این کار خسته شدم، دلم خواد گندم بکارم مادر بزرگ گفت، بله، به نظر منم بهتره که گندم بکاری؟ آل پرایز، مقداری گندم کاشت و بعد از مدتی گندم از دل خاک بیرون اومدن آل پرایز خیلی خوشحال شد با عجله به نظر مادر رفت و گفت مادر بزرگ، گندم ها جوانه زدن خیلی زیاد هستند و ما محصول خوبی خواهیم داشت از اون روز به بعد آلاپریس با شوق به گندم هاش سر میزد و به اونها رسیدگی میکرد اما یه روز وقتی که برای سرکشی به مزرعه رفت با کمال تأسف دید که تمام گندم هاش خورده شدن با ناراحتی به خونه برگشت و در حالی که بغض در گلوش بود تمام ماجرا رو برای مادر بزرگش تعریف کرد و بعد با عصبانیت گفت من می دونم چی کارش کنم اون به مزرعه برگشت و اونجا دام کار گذاشت بعد از مدتی یک لکلک لک در دام آربا پریس افتاد فرس چوب بلندی برداشت و به طرف لک لک رفت و گفت پس تو بودی که گندومای منو خوردی حالا حساب تو می رسم و اون وقت چوب رو بلند کرد و خواست بر سر لکلک بزنه که لکلک لک به صدا درآمد و گفت: دست نگهدار. آلبا من منو نکش. من قول میدم به تو کمک کنم. آلبا پریس پرسید: تو چه کمکی میتونی به من بکنی؟ لکلک لک جواب داد: من تو رو خوشبخت خواهم کرد. فقط کافی کافیه که هر وقت به من احتیاج داشتی به نزد من بیای. آلبا پریس گفت: من نمیدونم تو کجا هستی. پس چطور میتونم به نزدت بیام؟ لکلک لک گفت: من در سر راهت مقداری از پرهای خودم رو به عنوان نشانه خواهم گذاشت تا تو راه رو پیدا کنی و به نزد من بیای. بعد از این گفتگو آلباپریس لکلک رو آزاد کرد. لکلک لک پر کشید و بالای سر آلباپریس زد و گفت: از این کارت پشیمون نمیشی؟ آلباپریس هم به خونه برگشت و تموم ماجرا رو برای بزرگ تعریف کرد و اون وقت توشه راهی فراهم کرد و به جستجوی لکلک به راه لکلک لک همونطور که گفته بود در سر راهش مقداری از پرهای خودش رو گذاشته بود تا اون راه رو گم نکنه آل و پریس رفت و رفت تا به اینکه به خونه بزرگی رسید در زد پیرمردی در رو به روش باز کرد و اون رو به خونه برد خونه پر بود از پوستهای قیمت. پیرزنی روی پوست ها نشسته بود و کار میکرد پیرمرد و پیرزن از جوان به خوبی پذیرایی کردند و به اون شربتهای مقبی و شیرماهی خوشمزه دادند و بعد از این آلباپریس خوب خورد و خوب نوشید پیرمرد از میان پوستها یک پوست سنجاب به اون داد گفت این پوست رو به عنوان هدیه از من بپذیر و به مادر بزرگت بده فقط یادت باشه که اون رو به هیچ کسی ندی و به خوبی از آن نگهداری کنی آلبا پریس پرسید برای چی پیرمر جواب داد برای اینکه این پوست ارزش زیادی داره و تو رو صاحب همه چیز خواهد کرد آلبا پریس پوست رو گرفت و تشکر کرد و به طرف خونه به راه افتاد وقتی به خونه رسید پوست سنجاب رو به مادر بزرگش داد و چون شب شده بود غذاش رو خورد و خوابید مادر بزرگ هم پوست رو در گوشه پنهون کرد و به خواب رفت نزدیکی های صبح آلباپرس قلتی زد و احساس کرد که پاش به یه چیز گرم و کرکدار می‌خوره ناگهان جا پرید و به اطرافش نگاه کرد اول چیزی ندید چشمش رو با دست مالید و نوگهان با تعجب دید که دیوارهای خونه پر از پوستهای گرون قیمت شده با خوشحالی مادربزرگ رو صدا کرد و مادربزرگ هم وقتی اون همه پوست رو دید خیلی خوشحال شد پریز از بیرون خونه سن و صدایی شنید وقتی بیرون رفت عدهای کارگر رو دید که دارند یک خونه و انباری می‌سازن. و همه عجیبتر این که خونه و انباری رو برای او میساختند وقتی خونه و انباری آماده شد تمام انبرها رو پر از گونیهای گندم و آرد کردند و به زودی خبر پولدار شدن آلبا پریس در اون شهر کوچیک پخش شد و به گوش ثروتمندترین مرد اون شهر که خیلی هم حریص بود رسید مرد معطل نکرد و یک راست به طرف خونه آلبا پریس رفت و از اون خواست کمی آرد به بده مرد حریص میخواست هر طور شده سر از کار آلبا پرایس در بیاره مرد هرریس با اون آرتان ها نون پخت و تمام اونها رو خورد و دوباره به نزد آلبا برگشت و اونقدر از آلبا پرسید که چطورین همه ثروت رسیده به تو تا بالاخره آلبا که حالا مرد ثروتمندی شده بود با خودش فکر کرد بهتره این پوست رو به قیمت به این مرد بفروشم من حسابی ثروتمند شدم و دیگه احتیاجی به اون ندارم با این فکر پوست سنجاب رو به قیمت خیلی خوبی به مرد فروخت. فردای اون روز وقتی از خواب بیدار شد چیز عجیبی دید. از اون همه پوستی که در خونه داشت حتی یک دونه هم باقی نمونده بود. با عجله بیرون دید و خاسته خودش رو به انبار برسونه اما از خونه و انبار جدید بزرگش هم اثری نبود. انگار دود شده بود و به هوا رفته بود. حال با پریس قمگین شد و به فکر ناگهان، به یاد لکلک لک افتاد شال و کلاه کرد و به طرف خونه لکلک لک که همون پیرمرد بود به راه افتاد وقتی به اونجا رسید پیرمرد از اون پرسید چی شده خیلی زود به اینجا برگشتی پریس تمام ماجرا رو براش تعریف کرد پیرمرد اون گفت کار خیلی بدی کردی مگر من بهتون نگفتم که به هیچ قیمتی اون پوست رو از خود دور نکن پریس چیزی نگفت و سرش رو به زیر انداخت، پیرمرد دلش به حال اون سوخت این بار از بیون پوست ها یک پوست قاغم برداشت و به اون داد و گفت امیدوارم از این یکی به خوبی مراقبت کنی و اون رو از دست ندی. آل و پرش از پیرمرد تشکر کرد و به خونه برگشت و چون خیلی خسته بود به رخت خواب رفت. خوابی دو نزدیک های صبح بود که پاهاش به چیز گرم و کرکداری خورد. آلواپریس ادجا پرید و به اطرافش نگاه کرد و دوباره خونه پر از پوستهای قیمتی شده بود آلواپریس با, با عجله بیرون دوید و همونطور که فکر میکرد عدهای کارگر رو دید که مشغول خونه ساختن و یک انباری بزرگ بودن. از اون روز به بعد آلواپریس و مادربزرگش دوباره روی خوشبختی رو دیدند و به خوبی خوشی در کنار هم زندگی کردند تا اینکه دوباره سر و کله مرد حریس پیدا شد وقتی فهمید موضوع از چه قراره به آلواپریس گفت که حاضر پوست قاغم رو به قیمت خوبی بخره آلواپریس دوباره حرفای پیرمرد و فراموش کرد و چون فکر میکرد حالا که سرمتمند شده دیگه نیازی به اون پوست نداره اون رو به قیمت خیلی خوبی به مرد حریس فروخت پردای اون روز باز هم آلواپریس با تمام ثروت خودش رو از دست داده بود و مثل گذشته مردی فقیر شده بود. آلوپریس با این بار هم باز به سراغ پیرمرد و پیرزن رفت. پیرمرد وقتی ماجرای اون رو شنید گفت: من هر چی رو که میخواستی به تو دادم و تو نتونستی اونها رو نگهداری. و خیلی راحت همه چیز رو خودت از دست دادی. دیگه کاری نمونده که من برات انجام بدم. بهتره که به خونت برگردی. آلوپریس با, با اندوه راه برگشت رو در پیش گرفت و خواست از خونه پیرمرد بیرون بیاد که پیرزنی که روی پوست نشسته بود و کار کرد، دلش برای اون سوخت و گفت صبر کن صبر کن بعد به گوشه رفت و یک پیاله کوچولو برای اون آورد و گفت این یک پیاله است و هر چی تو اون بریزی پر نمیشه این پیاله رو بگیر و به سراغ اون مرد حریس برو و از اون آرت بخواه اگر مرد پرسید اون رو در چی بریزم تو به اون بگو که در این پیاله بریز اون مرد حتما به تو خواهد گفت که این پیاله که خیلی کوچیکه بذار آرد رو در یک کیسه بریزن بگو به کیسه احتیاجی ندارم و همون پیاله برام کافیه اون وقت خودت خواهی دید که این پیاله کوچولو چه کارها که نمی کنه و چقدر با ارزشه چون اگر مرد عریس تمام آردهای انبارش رو هم در اون بریزه باز هم پر نمیشه بعد ادامه داد وقتی تمام آردها رو از اون گرفتی به طرف خونت برو و پشت سرت هم نگاه نکن و مطمئن باش که مرد حریس باز هم به دنبال تو خواهد اومد و چون آردی دیگه برای مرد حریس نمونده اون از تو آرد خواهد خواست اما تو به حرفای اون اعتنایی نکن وقتی به التماس افتاد به اون بگو که به شرطی حاضری که آرت ها رو به اون برگردونی. به این شرط که پوست های سنجاب و قاقومت رو به تو برگردون و به تو بده. به این ترتیب با کمک این پیاله سهرامیز میتونی پوست هات رو پس بگیری و تمام عمرت رو به خوبی و خوشی زندگی کنی. فقط باید قول بدی که از این پوست ها به خوبی مراقبت کنیم و اونها رو از دست ندی چون دیگه کاری از دست من ساخته نیست. آل پریس قول داد و پیاله رو به دست گرفت و به طرف خونه مرد حریس راه افتاد. وقتی به اونجا رسید، مرد رو صدا زده گفت، کمی به من آرد بده. مرد نگاهی به پیاله انداخت و گفت، چرا من باید به تو آرد بدم؟ آل پریس گفت، من پوست گرون قیمتی دارم. اگر این پیاله کچیک منو پر از آرد کنی، اون رو به تو میده. مرد حریص نگاهی به پیاله کوچیک انداخت و با خودش گفت معامله بدی نیست پس رو با آلبا کرد و گفت این پیاله خیلی کوچیکه بذار یک کیسه برات بیارم آلبا گفت نه همین اندازه برام کافیه مرد با خوشحالی گفت هر تو که میل توه. اون به کارگراش دستور داد که پیاله رو پر آرت کنن کارگرا دست به کار شدن اما هرچی آرت توی پیاله میریفتن پر میشد. بزودی تمام انبار مرد خالی شد اما هنوز هم هن پیاله پر نشده بود کارگرا که عرق از سر و کلشون میریخت به طرف اربابشون اومدند و گفتن انبار خالی شده ولی دیگه آردی هم نمونده پیاله هم پر نشده مرد فهمید که چه حقیقی خورده از آلبرپریس خواست تا آردها رو به اون پس بده اما آلبرپریس به اون گوش نداد و مرد التماس کنون به دنبال اون آلبرپریس داد آلب پریس که موقع مناسب دید به مرد گفت به شرطی آرت ها رو به تو ور که پوست های قاقام و سنجاب رو به من پس بدی. مرد هریس به ناچار قبول کرد و پوست ها رو به اون برگردند و آرت ها رو گرفت آلوپره با خوشحالی به خونه برگشت و اون شب رو با خیال راحت خوابید. صبح شد که در دیوار خونهش پر از پوست های قیمت شده بود بیرون خونه هم کارگرها مشغول ساختن یک خونه و یک انباری زیبا شده بودند. وقتی خونه و انباری ساخته شد الباپریس و مادر بزرگ در خونه تازه سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. بله دوستان من دوستان عزیز و همسفر من این هم یکی دیگر از قصه های افسانه های جادوگری امیدوارم که از شنیدن این قصه هم رضایت کامل و کافی رو داشته باشید. و امیدوارم که در قصه های بعدی هم شما هم همسفر و همراه بشید. پس شما رو تا یک قصه دیگه به خدای بزرگ میسپارم مراقبه مراقب خوبی های خودتون باشید. خدا یار و نگهدار شما.